هزار دشمن مرمی کنند قصد حلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با مرا امید به سال تو زنده می وگرنه وگر نه هردمم از هجر توست بیم حلاک نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چار روَد به خواب دو چشم از خیال تو ای ها بود صبور دل در فراق تو آشا اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم وگر تو زخم دهی به که دیگری تریا به ضرب سیفک قتلی حیات ونا ابدا لان روحی قطا به انیکون فدا اینان مپیچ که گرمی زنی به شمشیرم سپر کنم سر و دستت ندارم از فطرات. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک به چشم خالق عزیز جهان شود حافظ که بردرتون حد روی مسکنت برخواد